یکی بود یکی نبود. پیرزنی بود که سه تا دختر داشت. هر سه دختر توی خونه مونده بودن و شوهر براشون پیدا نمیشد. روزی پیرزن با خودش گفت باید دست به کار بشم. دخترا رو شوهر بدم. چیکار کار کنم؟ چی کار, کار نکنم؟ پیرزن بعد از مدتی فکر کردن چرخ نخریسی دختر بزرگ و ورد و گذاشت دمه در. اونو نشون پشت چرخ. دختر مشغول رشتن شد. اصری کلپزی از سر کار برمیگشت گشت. دختر دید و پسندید. فردا پیرزن دختر وسطی رو آورده دم در. نشوندش پشت چرخ. این یکی رو هم کب و پزی دید و پسندید. روز سوم دختر آخرش رو نشون پشت چرخ. اونو هم مرد اصل فروشی پسندید و گرفت. مدتی گذشت. پیرزن با خودش گفت پاشم برم ببینم دخترها در چه حالی هستن. یه سری بهشون بزنم. پاشد رفت یه عباسی واحد پول قدیم. دادو از بقال سرگذر برگه شفتالو خرید. ریخت توی جیبش. رفت و رسید به خونه دختر بزرگه. در زد. دختر در باز کرد. سلام علیک کردن و خوش و بش. رفتن نشستن توی اتاق. پیر زن برگر رو داد به دخترش. شب شد. داماد اومد. کله و پاچه با خودش رو ورده بود. به زنش گفت. زن اینا رو بذار توی تنور بپزه صبح میخوریم. وقت خوابیدن رسید. همه که به خواب رفتن پیرزن پاشو در سر تنور کله پاچه پخت نفخته رو در آورد و شروع کرد به نیش کشیدن کل پاست صدایی خشخشو شنید و بیدار شد گفت زن پاشو یه سگ داره کل پاچه رو میخوره پاشو پاشو باید بیرونش کنی زن و شوهر بلند شدن رفتن سر تنور دختر وقتی که مادرشو توی اون حال دید گفت پاشو از این خونه برو. آب روی منو بردی. پیرزن گفت برگه های منو بده تا برم. برگه ها رو گرفت و صبح زود حجوم برد به طرف خونه کباب پس. برگه ها رو داد به دخترش و گرم و صحبت شدن. عصری کباب اومد. گوشت برای کباب آورده بود. از قناره آویزون کرده بودن. اومدن و نشستن. وقتی که شام خوردن و خوابیدن پیرزن با خودش گفت پاشم برم مطبخ خیلی وقته که گوشت نخوردم. اون وقت بلند شد و رفت. دید دستش به قناره نمیرسه هی hey پرید و پرید. باز دستش نرسید. کباپز به صدای تاپ بیدار شد و گفت زن پاشو. دوست اومده. بلند شدن رفتن دیدن. پیرزن هی می بالا که گوشت رو بگیره. اما دستش نمیرسه. دختر که مادرش تو این وضعیت دید گفت ای وای آب روم رفت. صبح به پیرزن گفت پاشو برو خونت. دیگه نمیخوام اینجا بمونی. پیرزن گفت برگه های منو بده تا برم. برگه ها رو گرفت و حجوم برد به طرف خونی دختر کوچیکه دختر کوچیکه که توی همسایگیشون عروسی بود که اینا رو هم دعوت کرده بودن. دختر گفت من که مهمون دارم نمیتونم بیام. گفتن اشکالی نداره با مهمونت بیا. مادر و دختر بلند شدن و رفتن به خونه عروس. اونا هم اصل فروش بودن. مطرب ها و نوازنده میزدن و میرقصیدن. بزن و بشکنی رو انداخته بودن که بیا و ببین. پیرزن یواشکی رفت جای کوزه های اصل رو پیدا کرد. دست کرد از یک کوزه کوچیک اصل بخوره که دستش گیر کرد و هرچی تلاش کرد رها نشد ناچار کوزه ها رو زد زیر چادرش و اومد نشست توی مجلس. وقت خوابی رسید. تابستون بود و شب محتاب. رخت خواب پیرزن و تو حیات انداخته بودن. نیمه شب بلند شد که کوزه اثر رو یه کاریش بکنه. این طرف و اون طرف میگشت که چشمش افتاد به یه سنگ صاف و مرمری. نگو سنگ نبود که کله بیموی نوازندهی بود که زیر نور ماه برق می زد. پیرزن دستش رو بالا برد و کوزه رو محکم به کله نوازنده زد. نوازنده فریادش بلند شد. همه از خواب پریدن و دیدن که خون از سر و روی نوازنده میریزه. فریاد میزد. وای ذلیل شده. سرم رو شکستن. ای وای مردم. دختر که مادرشو توی اون حال دید از شرم و خجالت توی پستو قایم شد. صبح به ننش گفت. دیگه بسه. پاشو برو که آب رو بردی. پیرزن گفت برگه های منو بده تا برم. دختر برگه ها رو داد و گفت بیا و پاشو برو. پیرزن برگه ها رو گرفت و را افتاد به طرف خونش. اومد رسید به دکان بقالی سر کوچه. به بقال گفت برگه ها بگیر و یه عباسی منو پس بده. من برگ مرگی لازم ندارم. بقال اول قبول نمیکرد آخر سر دید که پیرزن دست بردار نیست. رو گرفت و یعقوبیه اونو بهش پس داد. پیرزن اومد نشست توی خونه‌ش و دیگه به دیدن دخترهاش نرفت. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی t.mi مهران نشانی وبلاگ ما m l o g f a c کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی